حکایت. یکی از عرب در بیابانی از قایت تشنگی می گفت یا لیت قبل منیتی یوماً افوز و منیتی نهر طلاتم و رکبتی و ازل و املع و قربتی.